مؤسسه ائمة الهدا نشر بین المللی معارف قرآن و اهل بیت عليهم السلام. امروز افراد مختلفی از نوجوان و جوان تا میان سال و مسن در سنوف مختلف از دانش آموز و دانشجو گرفته تا معلم و استاد، کاسب و کارمند و کارگر در محیط کار، فضای عمومی، فضای مجازی و حتی فرزندان خود ما در خانه سوالات مهمی را از ما میپرسند و انتظار دارند که ما به عنوان قشت فرهنگی، مذهبی و انقلابی اولا با صبر و حوصله به پرسش های اونها گوش بدیم و بتوانیم اونها رو راهنمایی کنیم و پاسخی برای پرسش هاشون ارائه بدیم. ما از این پاسخگویی به عنوان قدرت اقنا یاد می‌کنیم. این قدرت اقنا دو لازمه داره. نخست آگاهی و استدلال منطقی و دوم فن بیان. جوانان از ما می‌پرسند دوره انقلاب با قبل از انقلاب چه تفاوتی داره؟ آیا اونطور که در فضای مجازی تصویرسازی میشه، رفاه و آزادی و حتی دینداری در دوره گوز بیشتر نبوده آیا واقعا نظام جمهوری اسلامی سطح دینداری مردم رو ارتقا داده پس نشانه های آن کجاست آیا نظام در عرصه رفاه مادی چه دستاورد هایی داشته و آیا اگر رژیم پهلوی نیز 42 سال دیگر ادامه می کشور به همین جایگاه یا جایگاه بالاتری نمی رسید اصلا مگر نه اینکه کشورهایی که با امریکا رابطه دارن اقتصاد بهتری دارند و مگر نه اینکه مسئولین بیان میکنن امریکا لت اصلی تحریم و مشکلات اقتصادی ماست پس چرا با اون سازش نمی کنیم تا معیشت مردم بهتر بشه مگر نه اینکه دین بیان میکنه ملا مععاشله لا مععادله و کاد فقر ایاکون کف کفرا آیا مشاهده نمی کنیم که مردم روز به روز سطح دین داریشون کاهش پیدا میکنه آیا با این اوضاع قابل مشاهده حکومت دینی می تونه مشکلات رو حل کنه؟ باید از ابتدا نباید بر پایه دین حکومت تشکیل می دادیم این درسته که ما از امریکا مستقل شدیم ولی به چین و روسیه وابسته شدیم اصلا الگوی متمایز انقلاب اسلامی برای حل مشکلات جامعه چی هست آیا مردم میتونن مشکلات خودشون رو خودشون رفع کنن پاسخ به این مسائل نیازمند پاسخگویی به یک سوال بنیادی تری هست و اون این هست که مسئولیت و نقش ما به عنوان انصار فرهنگی و مذهبی در پیشرفت فکری و همچنین رفاه جامعه چیست مساجد و مراکز دینی چگونه میتوانند به قرارگاه های تحول و پیشرفت جامعه و محله خودشون تبدیل بشن آیا دین مسئولیتتی رو در این عرصه بر ما قرار میده یا اینکه از ما میخواد که سررفند به معاد و آخرت بپردازیم رهبر معظم انقلاب کتاب به ولما و روحانیون بیان میفرمند باید مثل مار هوشیار بود و فهمید که وظیفه چیست؟ نمی شود گفت به من رفتی ندارد امروز هر روحانی به مختظای تلبس به این لباس موظف است از حکومت اسلام و حاکمیت قرآن دفاع کند همه بدانند که این روحانی خود را قادم این انقلاب میداند این افتخار است خدمت به این انقلاب افتخار است ماها به خواب شب هم نمیدیدیم که موقعیتی پیش بیاید و ما بتوانیم این طور به اسلام خدمت بکنیم یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص تبیین است حقایق را بدون تعصب روشن کنند بدون حاکمیت تعلقات جناحی و گروهی در جنگ سفر این یکی از کارهای مهم جناب امار یاسر تبیین حقیقت بود چون آن جناه مقابل که جناه معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشتند همینی که حالا امروز به آن جنگ روانی میگویند این جزء اختراعات جدید نیست شیوه هایش فخ کرده این از اول بوده خیلی هم ماهر بودند در این جنگ روانی تخریب ذهن هم آسان‌تر از تعمیر ذهن است لذا آنها شبهه افکنی می کردن. سوء زن را وارد می کردن کار آسانی بود این کسی که از این طرف خودش را موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بیستد و مقاومت کند جناب عمار یاسر بود که در غزایای جنگ سفین دارد که با اسب از این طرف جبهه به آن طرف جبهه و صفوف خودی می رفت در مقابل آنها می و مبالغی برای آنها صحبت میکرد. حقایقی را برای آنها روشن میکرد و تأثیر میگذاشت. یک جا میدید اختلاف پیدا شده، یک عدهی دوچار تردید شدند. بگو مگو توی آنها هست خودش را به سرعت آنجا میرسان و برایشان حرف میزد صحبت میکرد تبیین میکرد این گره ها را باز میکرد نقش نخبگان و خواص این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان در دیگران به وجود بیاورند آدم گاهی میبیند که متاسفانه بعضی از نخبگان اصلا ملتفت نیستند حرفی به نفع دشمن میپرانند به نفع جبهه‌ای که همت نابودی بنای جمهوری اسلامی است نیت بدی هم ندارند اما این بیبسی دیگر. برای پاسخ بویه به این مسائل نیازمند ایجاد قدرت تحلیل و توانمندی در حل مسئله هستیم. این موضوعات رو در دربیت مربی بیانیه گام دوم انقلاب با حضور اصادید توانمند کشوری در انجمن علمی بیانیه گام دوم دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامعه امام حسین یه کردیم. مؤسسه ائمة الهدا نشر بین المللی معارف قرآن و اهل بیت عليهم السلام.